تعبر بكم عن البؤوس والذراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى غسر وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من غسر إلى سجن وعذاب ان ابي حدثني ان رسول الله ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر والموت جسرها اولى الى جنانهم وجسرها اولى الى جهنمهم ما كذبت ولا كذبت و عرض فهم که عبی عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام السلام در صبح آشورا بعد از اون که خصیصین رو جدا فرمود انتخاب شده ها و برجسته ها و موفقه های در مسیر هدف بلند حسینی در اون امتحان خاص و اون مرحله حساس جدا شدن و اطراف حضرت حلقه زدن به خلاف آنچه که قبل حتی شب حضرت میفرمود هر میخواهد برود برود این مردم با شخص من کار دارند این ادرا مخاطب قرار داده اولا به عنوان بنل کرام و ثانیا با غید صبور باشید و استقامت داشته باشید گفتیم اگر می‌خواهیم از مکتب ابا عبدالله علیه السلام و سلام درس بیاموزیم به این دو نکته در مرحله اول از همین فرمایش مولا بیشتر توجه کنیم و درس بگیریم که یک اگر در سطح بن کرام باشیم یعنی تا اون مرحله حساس از نظر تکامل معنوی پیش رویم باز امکان رسیدن به مراحل برتر و کسب و نیل ارزشهای والای معنوی وجود دارد یعنی خلاصه تر و ساده تر ارز کنم اگر کسی میخواهد پیرو امام حسین علیه السلام باشد با این فرموده حضرت بیاموزد و این درس را فرا بگیرد که هیچگاه مدعی نشود و اینگونه معتقد نباشد که من به سرمنزل مقصود و اون که قله رفعت و کمال و سعادت رسیدم این هر صحیح نیست حتی جزء بنل کرام باشیم باز برای رسیدن به سطوح بالاتر راه وجود دارد و امکان تعالی هست، این یک نکته، نکته دوم، از عوامل و ابزاری که انسان را به اون کمالات ارزنده در سطح بالاتر سیر می دهد و میکشاند صبر است. هم آیات قرآن کریم در این زمینه مفصل بحث دارد که نمونه هایی رو اشاره کردیم مخصوصاً به گوشههایی از بحث دیشب تقاضا دارم توجه بیشتری داشته باشید که ادامهشو با بحث امشب نتیجه گیری کنیم شاید این قسمت اول رو که به قسمت بعدی فرموده عبا عبدالله بتوانیم برسیم اگر نجات طبق آیات قرآن کریم برای انبیا هست و نجینا نوه و لوت و صالح و ابراهیم و و را که یکی یکی آیات مطرح میکرد و من مأهو مطرح بود به رحمت مننا اما آیه مشخص میکرد این رحمت شامل حال اون کسانی میشود که صبور باشد و بشر, و بشر سابرین الذین اذا اصابتهم مسیبه قالوا انا لله و انا علیه راجعون اولائه که علیهم صلوات من ربهم و رحمه پس رحمتی که خدا می فرستد برای کسانی که صبورند و در اثر اون صبر به این رحمت رسیده و این رحمت باعث نجات اونها می شود اما اگر دقیق بشیم باز در همین قسمت از بحث شواهد هم الله ارائه خواهم کرد این صبر ب... که باعث نجات می شود نجات از چی؟ آیا یک زمان ما مثلا یک گرفتاری مالی داریم از اون نجات مییابیم یک گرفتاری بیماری جسمی داریم در اثر صبر و استقامت و تحمل برخی مسائل از این گرفتاری بیماری نجات مییابیم یک مشکل اختلافی با افرادی داریم اینها برطرف میشود یا نجات اعم و بالاتر از این مراحل است که قطعاً اینجاست یعنی اگر ما در سیر تکامل و تعالی معنوی گرفتار هوای نفسیم هیچ مشکل مالی نداریم هیچ گرفتاری بیماری جسمی نداریم سایر شعون ما هم تأمین و در یک سطح خوبی قرار گرفته ولی هوای نفس گرفتارم کرده در مسیر رشد به یک ارزش های بالا درجا زده ام عواملی که منو از این درجا زدن جدا کند و به مراحل بالاتر بکشاند این هم جزء بحث و نجینا می شود یا نه اجازه بدید مثال عرض کنم در میان دانشجویان یک دانشکده خوش استعداد ترین که از نظر توان و استعداد در حد نابقه قرار گرفته جداش میکنه امکانات و بورسیه تحصیلی و سایر لوازم ادامه تحصیل رو در اختیارش میگذارن آقا تش ببرید به فلان کشور. مثلا برای اینکه محسوس خوشه ارز میکنم هنوز برق کشف نشده این آقا استعدادی دارد که اگر چند سال در اون منطقه به مطالعه و زحمت و تلاش به پردازد میتواند یه همچه کاری کنه برق رو برای ما کشف کنه این اثر رو برای جامعه برمغان بیاره عنوان مثال حالا این آقا ببرند در اون منطقه اون بودجهی که در اختیارش گذاشتیم که به کمک اون بودجه یک همچه اثر علمی باقی بگذاره بودجه رو هدر نمیده غمار نمیکنه. دنبال شهوت رانی و شکم پرستی نمیره خرج کنه صرف کار اقتصادی میکنه سود کلانی هم میبره بعد از ده سال برمیگرده میگرده میگیم خواب آقا چه کار کردید؟ میگه شما انقدر پول به من دادید؟ ده سالم به من وقت دادید من انقدر کار کردم حالا تحویل شما میدم یا عالم نمیگن حیف چرا آقا ایشون قمار که نکرد شراب که نخورد دنبال شکمپرستی و شهوترانی که نرفت پول و برد سالمم زندگی کرد بگیر کار اقتصادی زد با سود بیشتری برگشت میگن این کار در حد خودش عالی ولی او بنا بود توانی که داره به کار ببرد که به کمک اون توان پدیده علمی در سطح بالاتر را به ارمغان بیاورد در مقایسه با اون توان او و اون اثری که از او انتظار میبریم، این عمل شایسته نیست. حالا شاید مثلا با یک مسامحهی بخوام تقریبه به ذهن کنم این عبارت اینجا به کار ببرم حسنات الابرار سیعات ال مغربین حالا با مسامحهی که مورد نظره دارم ارزم کنم خب اینجا اگر یک انسان که میتواند در این سطح از ارزش ها قرار بگیرد در سطح دیگری واقع شود، میگوییم حیف زایع شده انسانی که میتواند به مقامات بالای انسانیت و کمال بشری نائل شود، این انسان در حد پایینتر تر باغي بماند این بزرگترین ضرره یکی از عواملی که در نظام الهی سنت پروردگار آیات و روایات به سراحین رو مطرح میکنه باعث رسندن انسان به اون درجات میشه مبتلا شدن و صبر در اون ابتلاست مبتلا شدن و صبر در اون ابتلا گاهی ابتلایی پیش نمیاد سالبه به انتفاع موضوعس اصلا موضوعیت نداره تا حکم میخواد مطرح بشه حالا ابتلا پیش آمد در این ابتلا چگونه برخورد میکند اون نحوه برخورده با این ابتلا گاهی جزا و فضا و بیتابی و عدم تحمل است گاهی استقامت و صبر برای رسیدن به درجات بالاتر دیشب یه جوون عزیزی دمه در وقتی خارج می شدم پرسید پرسی امیدوارم امشب در جلسه باشه جاش همینجا تر کنم سوال خیلی خوبی بود از توجه شما ممنونم فرمودن اگر طبق این بحث شما انسان برای تکامل باید صبور باشه جزا و فضع نکنه و اون روایات میگوید به اندازه ای که جزا و فضع میکنیم از ارزش ها پایین میفتیم پس این گریه و سوگواری در عضای امام حسین جزا و فضع حساب میشود که از اون صبر و استقامت ما رو پایین بیاره یا نه؟ خب سؤال است جواب اجمالا دیشب بیشون کردم ولی یک کمی بازتر حالا هم ایشون بشنبن هم بقیه دقت بفرمایید جزا و فضع خود امام حسین حضرت زینب ابل فضل عباس علی اکبر و سایر شهدای کربلا علیهم السلام یا جزا و فضع ما در مورد اونها این دو دوتاست خود اونها دیشبم اشاره کردم شبای قبلم گفتم گفتم شما یک جا نشون بدید حضرت زینب و کبرا سلام الله زبان به شکایت و شکوه گشوده باشه بلکه می و والله ما رأی تو الا جمیلا ما زیبا دیدیم ما وظیفمون رو انجام دادیم امام حسین علیه سلام تو گودال قتلگاه الهی غزن به رزائک تسلیمن لگذائک رو مطرح فرموده اما اگر خود حضرت زینب گریه می و ما هم امروز داریم گریه میکنیم دو جمعه قضیه است یک اشک میریزیم ناله میزنیم که وای در طول تاریخ چقدر حق مظلوم بوده گریهمون برای مظلومیت حق نبی بیتابی خودمون در مقابل مسائف چرا حق باد مظلوم باشه چرا باید انقدر مردم بد باشن دیدید مثلا یه مربی دل سوخته ای که تمام وجودش رو در راه تربیت یه عده به کار میبره بعد میبینه بعضی به هیچ سراطی مستقیم نیستن این حالا در یک جمعی که میشینه میگه به خدا دارم دق میکنم این غصه داره منو داغون میکنه این گریوانمو رو میخوام چاک بدم چرا مردم گوششون بده کاره حرف حق نیست ای وای بر نادانی این مردم این جزا و نیست این اظهار درده نسبت به درد اجتماعی که هر کس دردمند نسبت به درد اجتماعی نباشد انسان نیست خوب گفته سعدی آدم اعضای یک فیکرم که در آفرینش دیگه گوهرم حدیث رو که کرده چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیقمی نشاید که نامن نهند آدمی تو که از مهنت دیگران بیغمی این مهنت یک زمانی بیچاره شام نداره از گرسنگی امشب بیتابی میکنه من غصه میخورم این در و میزنم اگر غصه حقیقی از درون باشه منو وادار میکنه این در در بزنم شامی براش تایی کنم اگر غصه ظاهری باشه فقط قصه ظاهری می که قصه واقعی نمیتونه باشه حالا تو که از مهنت دیگران بیغمی گاهی این مهنت دیگران انحراف مردم است آلودگی جامعه است حقایق زیر پا گذاشتن تو که از این چنین مهنت دیگران حالا بیغم میشی نسبت به این چنین مهنت اگر واقعا قصه بخوری اش بریزی اقدام میکنی در راستای به اندازه‌ای که توان دارید اون گونه را در جامعه از میان ببرید به اندازه‌ای که توان دارید این جزع و پزع در مقابل صبر نیست این اظهار درد برای انسانی که دردها را میشناسد و دردمندی برای نجات انسان ها به کار بردن است که در جای خودش ارزندم میتونه باشه پس اگر صبر، استقامت یعنی در ابتلاعاتی که برای ما پیش آمده نسبت به اون ابتلاعات ثابت قدمی و استادگی و توان لازم رو به کار بردن از میدان به درن نرفتن جهت رسیدن به اون عرضش های بالا همینجا اجازه بدید یک مطلبی رو ارز کنم تا آیات و روایات مربوطه رو یک کمی بازم بحث کنیم شما اگر در نظام پروردگار و سنت از حق اشاره که دیشبم عرض کردم دقیق بشی هر سمری هر بهرهی هر نتیجهی در اثر یک سلسله مقدمات معینه حاصل میشه و اگر قرآن کریم فرموده است فطلبیوت بیوت من اوابه ها نه یعنی مردم از پنجره وارد خونه میشدند حالا شما که میخواید وارد خونه بشید از در وارد خونه بشید قرآن فسیح و بلیغ توضیح واضحات به این معنی ممکنه داشته باشه نه میخواد با کنایه و اشاره این مطلب رو به فهمونه راه رسیدن به هر چیزی رو بلد باش از راهش وارد شو میخوای عالم بشی چه کار باید بکنی؟ میخوای انسان با تقوایی باشی چه کارایی رو باید انجام بدی؟ خود قرآن گاهی یاد میده ای ادلو، حوه، اقربو، تغوا اگه میخوای نزدیک تقوا بشی از ادالت باید شروع کنی عادل باش ای, ای ادلو اعدلو ادالت به معنی جامع کلمه در جمیع شؤون تا بتونی به تقوا برسی حالا بنده اینجا بشینم بگم دلم میخواهد با تقوا شوم دلم میخواهد عالم شوم نه درس بخونم نه ادالت داشته باشم نه سایر شون آیا من به اون درجاتی که باید برسم میرسم نسبت به علم و تقوا نه برای کسانی که قرب الهی و صاحب درجات عالیه تکامل معنوی باید بشون رک و بیپرده میگم باید در ابتلاعات قرار بگیرن میزان صبرشون در این ابتلاع معلوم بشه این نظام پروردگاره وقتی میزان صبرشون معلوم شد به اقتضای اون حد صبر، اون مقام رو پیدا میکنند، به اقتضای اون مقام آثار وجودی خواهند داشت چقدر دیشب آیه خوندم؟ حالا امشب هم اشاره میکنم. سوره که آیه 65، و آیات قبل و بعدشو حتما تقاضا دارم بعد تو منزل مراجعه بفرمایید من چون فرصت نیست همه این آیات رو بخونم آیات قبل و بعدش رو اشاره میکنه میدونید علامتون قضیه جناب خز و حضرت موسی علیهما السلامه البته در قرآن اسم خز برده نبرد نشده در بیرون از قرآن با توجه به منابع میگیم این عبدصاله جناب خضر بوده است فوجدا ابدا من عبادنا آتیناه و رحمتا من اندنا و مِنْ لَدُنَا علما تقاضا دارم دقت کنید این مقامی را که به این عبد صالح خدا داده طبق این آیه چه مقامی بود؟ میدونید از مجموعه وحثای قرآنی ولی آیه بعدیش را سریع بخونم روشن میکنه اینه قال لهو موسا لهو هو به کی برمیگرده؟ به اون عبد صالح الهی که طبق روایات و بحثای خارج از قرآن حضرت خیز السلام چی به اون میگه حضرت موسا یک پیغمبر اولو عزم دارای اون درجات از بینات معجزه و کرامت و اون شخصیت غاله لهو موسا پس معلوم اونو خو یعنی اون عبد ساله. در حدیست که موسی پیغمبر اول العزم معصوم وقتی قاله که چی قاله بعدش میگیم رو حساب دارین حرفو میزنه چی میگه بهش تل اتبه اوک الا ان تو علمه مما علمت رشدا الله اکبر آیا میشه بیام دنبالت به تعبیر خودمونی بگم میشه دست منو میگیری با خودت دبری که چی بکنی از اون چیزایی که به تو یاد دادن به منم یاد بدی ببینید مقام حالا این دوتا آیه را یک کمی دقت کنید. برگردم به بحث دیشب دوباره بیام اینجا نجینا صالحن لوتن نوح و, و و و گفتیم به چی؟ به رحمت مننا چون رحمت ما به اونها رسید نجینا شد خودش هم در سوره بقره تأکید میکنم اینو داشته باشید رحمت خدا به کی میرسه این گونه رحمت رحمت با لام نه رحمت نکره ای که آن باشه به با اون صورت به کی میرسه؟ و بشه رسابری اولائه علیهم صلاواتون من ربهم و رحمه در اینجا این عبد که به این مقام رسیده و وجدا عبدن من عبادنا تیناه رحمة من عندنا و علمناه من علما این علم لدنی که خدا به او داده قبل از اینکه این علم لدنی را بدهد اون رحمت شامل حالش شده و چرا موسی دقت کنید و چرا موسی با این عبد امکان ادامه این سفرشون نیست آیات بعدی مشخص میکنه قال انک لن نکه لَنَّ هَتِّيَةَ یعنی اون صبر رو میخواد که این رحمتو برسونه. این رحمت برسه یه نمونش علم لدنیه یه نمونش حقائق حتی ما ظاهری را که یک پیغمبره. اولا لازمه ممکن است نسبت به اون حقایق یک مقدار م... حالا مأموریت یا مسئولیت نداشته باشن به اون فرد بدن به میزانی که صبر داشته بش دادن طاقت نمیتونم بیارم صبر کنم نتیجه بگیرم بگم اینجای اشاره بکنم لذتشو ببرید تا بعد بهش حالا اون مقامی که خدا به حضرت زینب داده اون مقامی که خدا به امام حسین داده اون مقامی که خدا به اصحاب ابی عبدالله تو کربلا داده مقامی مقامیست؟ موسای پیغمبر قرآن دیگه از من داره به اون عبدالصالح الهی میگه میشه دست من بگیری؟ منم با تو بیام از اون حسرار مگوی پس پرده ای که حتی از من موسا مخفیه یه چیزایی من یاد بگیرم خدا اول میگه میدونید چرا به اون عبدالدین؟ رحمت مننا رحمت مشخص میکنه خنایی که به این درجه از خبر میرسن این رحمت شامل حالشون میشه و او هم همین رو به حضرت موسا مطرح میکنه لنتستتی امعی صبر وقت امام حسین صبح روز آشورا میگه صبران بن الكرام ماود موت الا تنتره. صبر رو داشته باشید. لذا به درجه و مقافی میرسن که نسبت به اون مقام اونها گفته می شود السلام علیکم یا انصار دین الله و عز داعه این مقام ود و این مقام انصار دین الهی بودن چیز ساده ای در این رابطه نمی تونه باشه یک آیه دیگم اجازه بدید باز که اشاره کردم یک کمی دقیق تر توجه کنیم بریم جلو آیه 24 از سوره سجده مضمون این آیه در چند جای قرآن به همین عبارت با مختصر تفاوتی اومده و جعلنا من هم در بعضی در مورد برخی و جعلنا هم اعمتن یهدونه به امرنا ما قرار دادیم امام بشن یهدون به امرنا به امر ما هدایت کنن سبرو و کانو و آیاتنایو غنون اول دقت بفرمایید مقام ایغان چه مقامیه؟ ما یکی از دلائلی که یک بود از ابعاد رجحان امیر المؤمنین علیه السلام بر ابراهیم خلیل و رحمان و مطرح میکنیم یکیش درجه یقین امیر المؤمنین علیه السلامه که می لو کش فلغتا مزدت تو یقینا این یکی از فضائل ارزنده مولاس ابراهیم خلیل میگه خدایا نشون بده به من ببینم چگونه زندگی زنده میکنی و که نوری ابراهیم ملکوت از و والعرض این نوری ملکوت رو میخواد داشته باشه تا یه درجه بالاتر بیاد ولی امیر المؤمنین میگه برام فرقی نمیکنه چون تحصیل حاصل میشه دارم یقین با این ارزش ولی کسانی که میخواهن به اون مقام ارزنده امامت برسن قبل از مرحله یقین داره میگه لما صبرو اینا صابر بودن اینا میستادن اینا قدرت داشتن حضرت عیوب علیه صلات و مزرعش وسیع تا حدی که در کتب تاریخی ما و قصص انبیا دارد در روز چند بار سفره پهن کرد، جمعیت زیادی می اومدن، سر سفره حضرت ایوب غذا می‌خوردند میرفتند چون خیلی امکانات مالی داشت دیس هزار اسب داشت غیر از شترهایی که داشت گله گوسند قضایی داشت دوازده پسر داشت همسرش هم دختر حضرت یوسف بود داماد از یوسف پیانبرم هست یک پیغمبر با شخصیت پدرزنش حضرت یوسف خودش از خاندان رسالت آدم فعالی که از نظر کشاورزی مزرعه بزرگ یک عبد عابد کذایی الهی ندا اومد که ایوب غانه ای رسول فضلنا بعضهم علا بعض شبیه اینم راجب داوود داری حضرت داوود به خدا عرش کرد خدایا میخوام رو در عالم معنا که میبینم بعضی بالاترن بعضیا پایینتر من چه بکنم ندا اومد خود تو برای امتحان آماده کن اگه میخوای تو امتحانات قرارت بدم حضرت ایوب مناجات میکنه عبد صالح الهیه خدا میگه ایوب میخوای بیای بالا میگه خدایا بله تسلیمم میگه پس آماده شو آماده شو یه روز با این سفره انداختن و این امکانات یه دفعه چوپانش دوان دوان دوید اومد جلو یا نبی یلا چی شده سیل اومد همه گستاندار رو بردیخ دریا هنوز حرف این چوپانه تموم نشده نگهبان اسبا اومد و شتورا. یا نبی یلا سائقه اومد همه اسبا و شطورا رو شجوم هنوز حرفش تموم نشده یکی از اصحابش دوید اومد یا نبی الله تسلیت چی شده دوازده پسر شما مهمون برادر بزرگشون بودن دور هم نشسته بودن صخف ریخت هر دوازده ها هنوز این حرف در اینجا تموم نشده که این مشکلات یکی اومد گفت یک آفتی اومد تمام باغ و مزرعی تو همه رو سوزند یه دفعه پچه پچه تو مردم افتاد اه این معلوم پیغمبر و حق نبوده وگرنه خدا صبر رو ببینید الله اکبر خدا چه میکنه بعد ایوب رو تو قران چگونه به رخ میکشه برای کسانی که در سیر و سلوک حقیقی معنوی کمال جوعی میخوان قرار بگیرند، آنانی که اهل فنن میگن از ایوب شروع کنید و از ذکر یونسیه شروع کنید و اطرار و رموزی که داخل اینها میخوان به رخ بکشن مطرح کنن تجسم بکنید که و تو این نکته یک پیغمبر برجسته الهی یه دفعه این مسائب بگونه ای پیش بیاد که بگن دروغ میگفته پیغمبر نبوده با خدا در افتاده خدام اینجوری داره آبروش میبره ولی خودش سالمه همسرشم هم وفاداره با همسرش دوتایی فعلا شیطان وسوسه کرد که اگر ایوب هنوز صبور هنوز ایوب یعنی اعتراض تو حریم الهی نسبت به بعضی اگر هنوز صبوره برای اینکه بدن سالمی داره بدنش هم بیمار شد بیماریش به گونه‌ای بود که قابل تحمل دیگران نبود امکان سیر کردن شکمش نداشت جمعیت هم گفتن از این شهر برو بیرون می ترسیم بلایی که خدا برای تو دروغون نعوذ بالله مقرر کرده دامن ما را هم بگیرد ما را بیچاره کنه لذا از این شهر بیرونش کردن رفت بیرون شهر یه جایی همسرش دختر یوسف میآمد گدایی میکرد می کرد قبل از گدایی تاریخ داره من میگم تو خونه مردم کار می کرد آزوغه تهیه میکرد برای عیوب میبرد کم کم شیطان اومد تو ازهان مردم برای اینکه این ممر فعلا ادامه زندگی عیوب رو از بین ببره. گفت همسر ایوب با ایوب در تماسه ایوب بیماری مصری داره. این اگه بخواد بیاد تو خونه های شما اون بیماری رو میاره تو هاتون راش ندید. از فردا دیگه راش ندادن که بیاد تو خونه هاشون کار کنه. چند روز غذا نداشتن. ایوب به همسرش گفت: منو وردار ببر حرکتش هم مشکل بود همون جایی که ما سفره میانداختیم مردم میومدند غذا می من منو اونجا بگذار ببین اینا رد میشن یکی یک ذره دلش به رحم میاد بگه ای همین بود که اینجا این همه به ما غذا میداد ایوب آورد اونجا گذاشت سنگ زدن اونقدر که ایوب داشت دید سنگباران باران اونها میمرد زنش عیوب رو از اونجا جدا کرد برد از این ده به اون ده می بردن از اون در تمام این مدت یک کلمه عیوب نگفته از خدا یا چرا اینجوری شد شو؟ شوخیه ولی با همه احوال انشاءالله می خواهیم برسیم به اینجا با صبر اصحاب کربلا قابل مقایسه نیست کربلا چیه خود عبی عبدالله که حسابش جداست قمر بنی هاشم و اول اکبر علی اکبر و اینا که من دهانم می شاد راجبونا بخوا حرف بزنم جانم صدای گرد زیر پای انصال مسلم ابن اوسجه ها و زهیر ابن قین ها و حبیب ابن مظاهر ها و ابن یزید ریاهی ها و دیگران که اون بزنگاه حساسه انتخاب در مرحله لغزش چه میکنه به کدوم طرف میره یا نه خم بر ابرو نیاورد مسئله رو باز حادتر کردن وادی وادی عشق است وادی وادی تحمل است وادی وادی ایستادن است وادی وادی سرسپردگی نسبت به اون مسیر تا معلوم بش من بچم بیشتر از این نمیفهمم میخوام با مثال یک کمی تو عالم بچگی خودم ببینم میتونم منتقل کنم یا نه دقت بفرمایید کسی که به شدت علاقه داره شیفتگی داره و در حد نهایی دلبستگی داره به چیزی چی بگم مثال یه مادر بیست سال بچه دار نمیشده حالا خدای بچه داده. شده یه جوون 25 ساله علاقه این مادر به این 25 پنج ساله رو در نظر بگیرید بعد از بیست سال خدا بهش بچه داده حالا این بچه رفته برای مسافرت خارج از کشور تحصیل پنج سال مادر از این بچه خبر نداره شب و روزی مادر عشق میریزه کی تحصیلش تموم میشه برگرده دلم تنگ شده امروز میان به این مادر میگن آماده باش بریم فرودگاه استقبال الان آغازادت داره میاد احساس مادر تو فرودگاه مرحله ای که بچه میخواد بغل کنه در نظر بگیرید یه تیغ بره تو پاش میفهمه؟ من دیگه از کردم مثال بچگی در حد خودم میزنم یه تیغ بره تو پاش میفهمه کسی رد بشه یه تنه بش بزنه در حالت عادی ممکنه برگرده بگه آی یه دعوام را بندازه چرا تنه زدی دندم و شکستی؟ اصلا متوجه نیست که کسی تنه میزنه چرا؟ چون جاذبه تری او را به خود اونچنان جذب کرده که این تیغ به پا و این دنده شکستن یا آسیب به پهلو را نمیفهمد اون کس که در مسیر قرب علی الله الهی او را به سوی خود اون گونه جذب میکند که تمام وجودش را عشق به آن ارزشها میگیرد جاذبه های دیگه براش معنا نداره تا کسی در ابتلاعات از پله صبر بالا نره به اینجا نمیرسه به اینجا نرسه جز بندگانی که اون حقائق ماوراء ظاهر بهش بدن نیست میخواید حقایق ماورا رو داشته باشید باید اینجوری باشید لذا ابی عبدالله صبح آشوران نشون داد به اونایی که میخواید بدونید مقامتون چیه؟ میخواید ببینید جایگاه تون کجاست به اینا نشون داد کما اینکه که امیر به سلمان فارسی نشون داد کما اینکه که امام سجاد به ابی همزه سمالی نشون داد اگر کسانی میخوانی یه مقدار بالاتر از حد ظاهری از حقایق عالم با خبر بشن باید بیان تو پله امتحان در پله امتحان بسوزن در این سوختنها استقامت و صبر رو نشون بدن تا برن بالا اما از کجا شروع میشه؟ برای امثال من بچه از کجا شروع میشه یه دفعه که از اون پله بالا نیست که وقتی امام حسین به اون اصحاب ارزنده میفرماد سبرن بن الكرام صبر کنید ای عزیزانه با کرامت بزرگه با شخصیت یا بزرگی که از دید امام حسینه صبر اونا توی هر اونا میخوان به این مقامات برسن مقامی که از روز آشورا امام سجاد علیه السلام تا امروز وجود مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین لطراب مقدم هلطدا صبح و شب خطاب به اونها بگه السلام علیکم یا انصار دین الله و عبداء الله اکبر چه مقامیه؟ یا اون همه اولیاء سلحا بزرگان یک عمر با عشق بگن یا لیتنی کننا مأکم یا لیتنی کننا مأکم به این مقام صبر صبر صبر صبر استقامت ولی برادر عزیزم جوان گرامیم از کجا شروع میشه بذارید از اماما براتون بگم این سبرار رو از کجا شروع کنید کتاب اصول کافی جلد دوم باب صبر حدیث شماره ششم نه بذارید قبل از که حدیث ششم رو بخونم اول حدیث پنزده رو بخونم که از کجاها شروع کنیم به ما یاد میدن خودشون به ما یاد دادن شما میدونید اگر کسی میخواد عالم بشه از روز اول که نمیبرن پای درسه مثلا در سیستم آوزوی درس خارج فلان مرجع این باید ابتدا مقدمات رو طی کنه یواش یواش سطوح مختلف رو پشت سر بگذاره بعد بیا تو درس خارج و آروم آروم به اون مراحلی که بتونه سطوح بالاتر رو بفهمه حالا کسی هم تو این اطلاعات و تو مشکلات و تو جاذبه‌های گوناگون فریب دهنده صبر و معنا کردیم حبس نفس بود دیگه نسبت به چه که نباید بخوایم نریم نسبت به اونی که باید بخوایم وادار کنیم که بریم حالا از کجا شروع میشه حدیث 15 باب صبر جلد جلد بله جلد دوم اصول کافی صفحه نود و یک حدیث از امیرالمؤمنین علیه السلام و ایشون از رسول خدا نقل میکند صبر صح صبر ستاس تاست صبر اندالمصیبه و صبرن علی الطاعه و صبرن عن المعصیه اولین پله اول نگاه کنید یک مصیبت آقا دنیا داریست که مصائب مشکلات نکن به شیعن من و نبلون نکن بهشه من الخوف و جوه و نقص من الاموال و انفص و سمرات و بشر سا بر. دنیا همینه باید یه مشکلات یه گرفتاری ها مصائب پیش بیاد برای انسان چقدر در این صائب جذب و فضا و بیتابی میکن یا صبورند. ای یه مرحله امتحان و آزمایش اولیه و صبر علا تاعت صبح میخواد باشه نماز بخونه من دیشب دیر قابیدام حالشو ندارم صبر همینجا شروع میشه یه دفعه که صبر مثل اصحاب ابی عبدالله تو کربلا که مطرح نمیشه باید پله پله شروع کنه من بدبختی که شب از فیلم نمیتونم بگذرم میشینم و صبح یا خدایی نکرده پانه میشم برای نماز خوندن یا اگه پامیشم کنام با تلو تلو درکت نمازی میخونم اونم نمازی که گفتن آقا افتاب داره میزنه گفت من نماز می میخوام بخونم که آفتابم یه گوشش زده باشه خب اینی که این مقدار استقامت ندارد این مقدار من باره های از گفتم عزیزان بازم میگم بازم میگم خیلی از بزرگان اینه به ما یاد دادن گفتم شما اولین قدم اگر میخوای تو مسیر کمال معنوی کنی یه چهل روز زبانتونو در این حد اونم چهل روز از زبان شروع کنید اونم به این حد غیبت نکنید غیبت نشنوید حرفایی که لازم نیست نزنید و انه لقوه معرزون چقدر صبر میخواد امتحان کنید آقا شیطان چه میکنه ها تصمیم میگیری نیروهاشو میفرسه نوچهاشو کهنه چهاش و بالاها و پای میفرسه به سراغ شما آقا یه دفعه توی مجلس چنان حرفای بی و بی چیز زده از مجلس میاد بیرون چی بود من گفتم من نمیتونم این زبانمو یه مقدار صبر کنم جلوشو بگیرم چی دارم میگم من نسبت به مقامات بالای انسانی من در حد کنترل این زبان آقا شکم باز اینو به ما یاد داده شما چهل روز قصد کنید. سری هر سفره غذایی که نشستید، هر چند رنگ غذایی که در اختیار شما بود. یه رنگشو بیشتر نخورید ببینید نفس چیکار میکنه آقا ساب خونه بعدش میاد زحمت کشیده رد احسان میشه بهش بر میخوره نعمت الهی مال بندگان خوب خداست از ما بهتر کی تو دنیا پیدا میشه این نعمت ها مال ما بندگان خداست پس از باب این که و اما به نعمت رب بکفحدث بسم الله الرحمن الرحیم همینا باعث میشه آقا میتونی صبر کنی وقت اون بزرگ میگفت از خونه در اومدم. اینایی که من میگم صحبت حرام و حلال یه مرحله است صحبت بالاتر از واجبات و مستحبات است. از در خونه در اومدم خانم گفت چی میل داری امروز گفتم خیلی حوس قرمه سبزی کردم گفت باشین وسایل تو خونه هست میپزم ولی وقتی با خودم از در منزل که خارج شدم فکر کردم بیچاره هنوز انقدر بعد اون موقع این آقای که حرف به ما می‌زد 60 خورده سالش بود شصت خورده سال از عمرت گذشته هنوز نفهمیدی بگی خانم هر چی بود میخوریم هنوز ما برای هوس نمیخوریم من اینقدر صبر ندارم خب حالا چه بکنم زره برگشتم منزل غذا رو آوردن ای قرمه سبزیه بخار میکرد و گرسنه‌ بودیم و میلم داشتیم و هوس هم داره قوقا میکنه. این های شیطانی ذهنی هم هی داره تأریض میکنه. گفتم باید با شیطان کشتی گرفت چند بار بزنش زمین تا بفهمه برادر چند بار که چشمت به نامحرم افتاد یه لگت به شیطان بزن دیگه نیاد سراغت وقتی برمیگردی نگاه میکنی شیطان میگه نه خوب گیر بردم این راحت میتونم بزنم زمین اینقدر میزنمش زمین میزنمش تا از اینقدر معنوی بمیره مرد میرم سراغ که دیگه یا نوچه های شیطان سره یه رشوه گرفتن سره یه دروغ گفتن سره یه غیبت کردن سره یه مردم آزاری کردن سره یه چی سره یه چی همینجور گفت سر سفره قضا نشستم گفتم خانم از زحمتت متشکرم نمیخوام نسبت به زحمت تو بی قدردانی ز... نکرده باشم ولی من چون یه همچه امری تو ذهنم گذشته میخوام لذا امروز ظهر من قرمه سبزی نمیخوام نون خشک تو خونه هست بده یکم نون خش بخوریم ما صبر تمرین میخواد از این پله های کوچولو کوچولو شروع کنیم صبر ان و صبر علت و صبر ان عن المعصیه معصیات داره الان منو می نمی به طرف خودش ببره اونایی که دزدای حرفه شدند، شدن از اول که دوه حرفه نبودند نبودن روز اول یه چیز مختصری دزدیدن کم کم به جایی رسیدن که حالا میخندند که شماها چقدر دزدای بیعرضه ای هستید که حمت عالی ندارید در دزدی کردن؟ باید با حمت عالی دزدید و چاپید و برد و خرد و چنین و چنان کرد؟ چرا چراتون روز اول صبرنج خدایش بیامرزه چه حرف خوبی زد چه حرف خوبی زد؟ فرمود اگه ماهرمانهه؟ روزه گرفتی خستهای، گروسنهی ای، تشنهای، از را رسیدی دم افتاره بهت میگن نون نداریم تو خونه میری تو صف نونوایی در نفر دادن با این خستگی میخوای تو صف واسی نونوا آشنا در میاد حاج آقا نون شما حاضره از اون پشت بیا بهت بدم صبر داری بیشتی بگی حق من نیست، این دهتا رو بده بد به من یا از قدرتت استفاده میکنی میری میگیری میری امروز این مقدار قدرت داری صبرشو نداری فردا اگر رئیس جمهور مملکت شدی در مقابل اون قدرت صبر نداری از همین جا شروع میشه برادر اینکه من هی تاکید میکنم از نگاه به نامحرم به ترس از نماز غذا شدن به ترس از شات تا دروغ گفتن به ترس از شات تا دیبات کردن به ترس از بی‌توجهی نسبت به ارزش های معنوی به چون اینجاها که صبر نمی‌کنید هی سر می‌خورید سرازیری رو دیدی سر میخوریم سر می‌خوریم سر می چنان سرعت برمی داره حالا وقتی می‌خوام جلو خودمون رو بگیریم دیگه نمی توانیم اون وقت حدیث یازدر رو رو براتون بخونم بعد برگردم حدیث 6 رو. این حدیث در تاعت سبور باش در مسائل سبور باش در معصیت صبور باش تمرین تون پله پله پل بیا بالاتر ابی ق... <تصفح> عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر فرمودن سیعتی علن ناس الزمانون الله اکبر ای خدا تا رو حقیقت ابی عبدالله تو رو به مظلومیت زینب کبران ترا به خون شهدای کربلا قسمت می دهیم ما رو در فتنه آخر الزمان یاری کن تا در مسیر تو ثابت قدم بمانیم آه، آه، آه. حدیث رو دفقت کنید آقا کافیه صفحه نود جلد دو باب صبر حدیث دوازده سیعتی الان ناس زمانون لا ينال الملك فيه الا بالقتل والتجبر یه زمانی بر بندگان میاد بر امت من میاد قدرت به دست نمیاد مگر اینکه بکشی و زور بگی ولل غنا الا بالقصب والبخل ثروت به دست نمیاد مگر اینکه بخوای غصب کنی و بخل ببرزی محبه الا به استقراج دین و اتباع الحوا نمیتونی محبوب بشی مگر اینکه بخوای دین رو خلاصه از دست بدی تا به هوای نفس بشی آقا من اگر مر دینه بگم خوش که مرتجع قدیمی براش کف نمیزنم بهب و چهچه براش نمی کنم یک کمی از دینه بزنیم تا بتونیم در جو جلوه پیدا کنیم سیعتی ناس زمانون بر امت من بر این انسانها زمانی بیاید قدرت به دست نمیاد مگر با کشتار و زورگویی ثروت به دست نمیاد مگر با غصب و بخ ولل محبه محبت و محبوب شدن حاصل نمی شود الا به استخراج دین و اتباع الحوا فمن از رکزالک از زمان اگه کسی تو اون زمان واقع شد فسبرم علل صقر و حویقدر علل غنا میتونه با جد و, بازد و بنده ها بشه ولی صبر کنه با همون کمش بسازه و صبر علل بغضه و حویقدر علل محبه میتونه دین از دست بده محبوب بشه ولی با همون عدم محبوبیتش میسازه میگه ما خدا را داریم و چه که خدا و پیغمبر گفتن و امام زمان از او دستور نمیداری مردم پذیرفتن پذیرفتن نپذیرفتن نپذیرفتن و, و صبر علی الظل و حب یقدر و علی از قدرت داره خودشو عزیز و قدرتمند نشون بده ولی بر همون حتی پایین به صبر میکنه آتا الله ثواب خمسین صدیغن ممن صدقه دی الله اکبر خداوند اجر پنجاه صدیق را مقام صدیق رو در قرآن بگردید دیگه وقت نیست آیات براتون بخونم چه مقامیه اون وقت کسانی که در این وادی یک صبر بر طاعت رو شروع کن صبر بر معصیت شروع کن دیگه فرصت هم اجازه نمیده اون حدیث رو بخونم اشاره میکنم بعد انشاءله شاء بحثشو ادامه میدیم فردا شب اگر خدا خواست و عمری بود ان میگه اولا صبر کن در اثر صبر رحمت خدا به تو برسه رحمت خدا به تو برسه همون طوری که انبیا رو با رحمت نجات داد همون طوری که خضر رو با رحمت به اون درجه رسون چه درجه ای در این مسیر ترقی الهی و طی این نردبانهای صعود به سوی ها میخواهی طی کنی باید صبور باشی صبر هم باید توی ابتلاعات قرار بگیره لذا چه زیبا میگه زاوتش مهری که خود افروختی جسم و جان و پیکرم را سوختی هر که زین آتش نسوزد پخته نیست وان که زین آتش بماند خام کیست ای تو داروی تن تبخیز من وی همه چیز من و هر چیز من روز هرچه غیر تو برتافتم خیشتن را در وجودت یافتم میگدازد گرچه جانم از فراغ زنده میدارد دلم را اشتیاق راستی را از چه جانم سوختی وین چه آتش بود تو افروختی خوب کردی بیشتر جانم بسوز هرچه خواهی بر بر فروز عاقبت من یار خود را یافتم نازنین دلدار خود را یافتم یاد تو روشنگر افکار من ای خوش آمن تا شدی تو یار من یه اشاره میکنم اینم بگیرید بعدم روش حالا شد بحث کنیم شیخ ایسای بحرینی وقتی خدمت امام عصد علیه رسید اون قضیه انا بعد که خیلی بیتابی میکرد به حضرت ارز کرد آقا زودتر جواب ما رو ندادید سه شب ما معطل موندیم حضرت که. خودتون سه شب وقت کستید؟ قاطع نخواستید که من بیان اینه داریم؟ خب علی ابن ابراهیم سی سفر رفت مکه میخواست که بعد از سی سفر نشون دادن چیه قضیه؟ گاهی حساب نجات امت هست حساب یک قوم و یک دسته و یک مردمه یه حسابی داره گاهی رشد فرده سرد اگه بخواد در این مرحله الان روش پیدا کنه این بحث مطرح است که صبوری چقدر وای میسی یا در میری میخوان محک بزنن ببینن چه مقدار ایستادگی میکنی تا تو رو به اون درجه برسونن تو سپاه امرستت خیلی ها بودن خیلی ها بودن بعضی ها پیشانی ها بیشتر از هرپی نوسته بود بیشتر از هر قرآن میخوندن بیشتر از هر نماز میخوندند اما اون لحظه خاصی که صبوری ایستادگی در مسیر هدف باید انجام بشه خب این صبر که مطرح شد حالا دقت بفرمایید. از مراحل ساده شروع میشه تا میرسه به مراحل بالاتر در این مراحل بالاتر هرچه امتحان بیشتر میشه استقامت مهمتره ولی با تمرین انسان میاد بالا دیگه تمرین میکنه چی شد که هور در اون بزنگاه حساس من همیشه در روزه هور مقیدم این دو سه نکته رو تذکر بدم بازم تکرار میکنم چی شد که جناب هر درود خدا بر او باد این توفیق رو یافت بیشتر در مقابل تمایل و هوای نفسش و به این فیض عظم ما نائل بشه این به مرور یه تمرینهای های صبری داشته یک وقتی برخورد کرد به ابی عبدالله علیه السلام حضرت فرمودن هر برای یاری ما اومدی یا برای جنگ با ما اومدی گوه من معمورم یا شما بیعت کنید با یزید یا شما را محاصره شده در کنترل بگیرم تا ببریم به یزید تحویل بدیم حضرت فرمودن سکلت که اومک مادرت به آزاد بنشینه منو بیعت با یزید هر چی جواب داد این فوش نیست دا. یه اصطلاحیست در عرب مثل که پلانی تفلک مادر مرده قالب دلسوزی مطرح میشه ولی خب خود امین اشاره به نام مادره هر برگشت کف یابنه رسول الله مادر شما زهراست من حریم و احترامشو نگه میدارم یعنی ارتباط قطع نشده این مقدمات داره یه وقت سین پاره میشه اون باید پرسید خدایا ما را به حال خودمون رها نکن خدایا ما رو جدا نکن. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت ابدا. ما رو به اینجا نکشونه. ای ارتباطه برقرار جوان تو این دهه محرم بیا با انس با امام حسین، با عزاداری با امام حسین، با سیاکوشی برای امام حسین، یه خلوت کن. با امام حسین عهد کن آقا جون. میخوام در خونه شما باشم. خوب آقایی هستی. نمیخوام جای دیگه برم. کدوم آقا آقاتر از ما حسین میخوای پیدا کنی؟ جوونا کدوم جوان انشالله شب هشتم مخصوص شما جوان که مال علی اکبر علیه السلامه و خیلی هم از شما توقع دارم اون شب و سنگ تمام بگذارید که انشالله عرض ادب کنیم کی میخوای بهش دل ببندی؟ قشنگ قشنگی ظاهری نمیگم ها؟ غشنگتر از نظر اخلاق رفتار انسانیت بزرگی ازمت از علی اکبر علیه السلام برو کاکل تو به کاکل علی اکبر و گره بزن برو دامن تو به دامن قاسم ابن الحسن گره بزن بعد ببین زندگی چی شیرینی پیدا میکنه ببین چه هایی میتونی ببری این ارتباطه رو قطع نکن اگه بریده شد مشکل میشه لذا هر قط نکرده آقا جون مادر شما زهرا یک دو اذان ظهر شد آقا دستور داد اذان بگی نماز شروع کنیم میخوایم نماز بخونیم امام حسین پرمودن هر من با یاوران خودم اصحاب خودم نماز میکنم تو هم میخوای با اصحاب خودت نماز بخونی بخون گفت نخیر نرسول رسول لامامیان پشت سر شما نماز میکنیم این مقدار همینا دستگیری میکنه اینجا از زبان شماها بگم از زبان خودم هم میگم ابن رسول الله مام سعی کردیم تو دهی محرم عرض ادب کنیم تو دهی فاطمی عرض ادب کنیم تو ماه سفر عرض ادب کنیم تو ازای شما سیاه بپوشیم تو شادی شما این مقدار ارتباط رو از ما که بیشتر بر نیومد ولی شما تو زیارت جامعه خودتون به ما یاد دادید بگیم و عادت و کمل احسان و سجیت و کمل شما رو به جان. مادرتون زهرا سلام الله علیه که بزرگ عالم وجود است و همه براش احترام قائلی ما رو از در خانه خودتون مرانی ما رو تو این در خانه نگه دارید شیرینی ارتباط با در خانه به ما به چی شنید تک بود تا رسید به ظهر آشورا صبح آشورا یه وقتی دن هر لرزه رنگ چهره تغییر کرده یه حالت عجیبی هر به خودش گرفته یکی از دوستاش اومد هور تو شجاع عربی تو کوفه ای عمر سعد شجاع نبوده جنگجو نبوده روی حساب عوام فریبی مقدس مهابی آوردنش و نمونه های این رو اما هور یک جنگجوی قویی بود تو چه خبرته؟ گفت به خدا قسم خودم و بین دوزخ و بهش دارم میبینم بین دوزخ و بهشت دارم میبینم این صبره این استقامت که بیشتم خودم از دوزخ بکشم کنار به سمت بهشت ببرم اومد سراغ عمر صد سر. گفت عمر صد جدی میخواید با حسین به جنگی؟ بله جنگی میکنم تو مقاتل داره عبارتش رو جنگی میکنم که سرها از بدن جدا شود و دستها به زمین بیفتد یعنی جدی میخواید با پسر پیغمبر به جنگید؟ بله یواشکی اصف خودشو سوار شد یکی متوجه شد گوه تو امروز آب دادی خود او میگه من فهمیدم هر متوجه شده که من متوجه شدم او الان میخواد از سپاه جدا بشه داره از من تقیه میکنه به بهانه اینکه من میخوام اصفم و آب بدم از من جدا شد ولی من فهمیدم هر حالش حال دیگریه داره وصل میشه داره میرسه به اونجایی که باید درسه یه وقت به بهانه‌ای که اصلا میخوام آب بدم از جمعیت جدا شد دوان دوان به طرف خیام عبی عبدالله وجود مقدس ابالفضل علیه السلام پاسبان و نگهبان خیام عبی عبدالله این برادر با وفای حسین اومد جلو کی هستی چه میگی گردنشو کج کرد اشکی از چشما داره میریزه جوان این شبا بیا پیش خدا گردنتو کج کرد بیا هر بشو بیا آزاده بشو بیا همون جوری که هر اومد پیش امام حسین آقا خجالت زدم بد کردم سرش هم انداخته بود پایین امام حسین اومد دست شو برد زیر چونش ای سر حرکت داد برد بالا فرمود ارفر سک سر سرتو بالا بگیر تو که برگشتی تو هم بیایی نصف شبی تو این دهه محرم به امام زمانت بگو یبنل حسن سرم پایین خجالت میکشم. ولی آقا جون شما منایتی بکنید یه دستی به زیر چونه ما بیارید یه گوشه ارفع را هم شما به ما نشون بدید که قدرت پیدا کنیم رضای ما حسین او رو پذیرفت آقا توبه من پذیرفته است بله پذیرفته است خب آقا اجازه بدید از همینجا برگردم من اول شهید راه شما باشم من بودم دل زن و بچه شما را به درد آوردم من بودم شما رو محاصره کردم من بودم که این صحنه رو ایجاد کردم الان ما نقل اومده باشن از زینب سلام الله ها و از بانوان و مخدرات و رضایت کسب کنند و به سمت میدان رفت و جنگ نمایانی کرد و حالا که داره به زمین میفته از عصف فریادش رو بلند کرد حسین جان من رفتم امام حسین دعوشین بود به سراغ یکی یکی شهده اومد اینها رو نوازش میکرد، کرد سرشون رو به دامن می و بعد بدنشونو میآورد می آورد توی خیمه معینی میگذاشت که که بعدها تو حمله اومدن تو اون خیمه ها سرها رو بریدن امام حسین علیه السلام اومد سرها رو به دامن گرفت نوازش کرد اینا خود این احساس آرامش رو که کردن جان به جان آفرین تسلیم کردن حتی سری که بریده شده بود یعنی زخ شده بود خون فوران میکرد امام با دستمال خاصه خودش اون سر رو بست که خود این هم قزایایی در تاریخ داره بدین ترتیب آزادگی خودش رو در تاریخ نشون داد اما همه شهدا موقع جنگ دادن برای خود امام حسین گریه می‌کردند هر داره از دنیا میره امام حسین اومده سرشو به دامن گرفته نوازش کرده بهشت و نشون داده با آرامش جان به جان بر این می میکند اما جان فدای ابن نرسول الله حسین جان از یک طرف تو گودال قتل گاس میخواد جان بده شمر با چکمه روی سینه ایستاده داده از یک طرف دیگر صدا بلند کردند به خیام ابی عبدالله حمله کنید داره امام حسین به زحمت خودشو تکون یک کمی تنست سرشو تو گودال قتلگاه بالا بیاره فرمودی یا شیت عال ابی اگه دین ندارید و احرارا فی کن اول بیایید کار منو یکسره کنید بعد برید سراغ خیام من